همیشه آدم باید تمه هرفش رو بزن، چون مرگ پشت دره تو نمیدونی چقدر زنده نمیدونی که فردا رو میبینی یا نه من همیشه و حسین لنتی مرگ یعنی آقابد تا آدم میزاد عتش میاد تا جایی که یادم میاد اولین بار رفتم قبل بهصبحم گفتن جا تاخر اینجاست فکر میکردم مرگ مال همساگ است فکر کردنم بهش بودسه اوور نمیخوام خوام بمیرم منگه چند سالم من که بره دوک سرم تا س چند سال بعد وقتی که دکترا گفتم من سرطان دارم یه جورایی خوشگبز دنیای لنتی مید دورم چه نمیدونم که طور میشه شب بهم گفتم به هر حال تو همینی زندگی کو شب فردا رو نبینی. شاید این روز آخرت که می‌نویسن توی کاغذ دفتر زندگیت بهم گفته شف فردا رو نبینی بهم گفته شف فردا رو نبینی شب فردا رو نبینم شاید اینم روز آخر این زندگی لعنتیم میگن اشقت رفت گونه لقش عروس خوش میدم تو دلم بش و گل گرفتر اون رابطه رو که در میاد موگ گندش میگم پشتت حرف به تخمه چپم وگ کنی فبود مرده است من به هیچ کسی اتیاجی ندارم من بدتر قبلم هم شعاله ورم میگم وطن فروش باشه مخواه فقط به هم بگو وطن تی از اون سطنه طلبه تا اون طرف رژیمش که میخوام بره کشوره همسایه من از این عرفا گوشام پره از اونایی که تو کلشو ناجوره فکر کردم به ایران همه روزام شده ولی دورم ازش کتاخونه یکی باید زبون شما رو کوتاه کنه مثل من مثل من علی دورم ازش کوتاخونه دورم ازش کوتاخونه دورم ازش کوتاخونه فکر کردم به ایران همه روزام شده سه کسی که همه چیشو از دست دادیدی که نمیتونه هیچ چیزی بدتر باشه شاید حرفم هست خنده دارم مردن نمیترسم من مگر روحت شه با چشام چم مرگو دیدم نمیدونم چرا واسه میره سختو میدم با هر در شدم ماهنتر تر یادم که راهها که سختو میره بک تو ببر تو چیز نمیتونی عزیزی زندگی یه لعنتیه میفهمی بعد از اینم منتظر بدترینم بهم میگه سختو گیرم میگذره بله ای من نیستم زندگیه که منو بعد از و یادت باشه وقتی مردم باشه پیرنت رنگ بیشتره روزگاهی که سرخ شدهش با سگه خدای خدایی که میگنه شاید وقتی مردم دیدمش همه روزام شدیم م مثلاش کوتاخنهم مثلاش کوتاخنه مثل من من مثل من مثل من